پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجواکه قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم چطوری؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یک رادیو پس فردای دیگه آغاز شد با شما این پنج و پنج دقیقه آینده رو برو بریم قائله رادیو پاس فردا این هفتم شعر سروده برامون طبق معمول عرفته گفته که وقت رای دادن و باید حساب کتاب کنیم به یکی رای بدیم و اون یکی رو جواب کنیم اما این شکلی که نیست هر کی رو خواستیم بیاریم فکر اینجور جور کارا رو باید که توی خواب کنیم دست رو هرکی کی بذاری شورای نگهبان میگه یعنی هم نچ خودشون میگن که ما عکس کی رو تو خواب کنیم حالا موندیم پای صندوق همه انگوش به دهن میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنیم دیگه تا بوده همین بوده و ماها بهتره جای این حرفا بریم و فکر نون و آب کنیم به به با تشکرت شاعرمون که ظاهرا به جای انتخابات میخواد بره دنبال یه لقمه نون و آب این هفته با توجه به اینکه جمعه هفته آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار میشه ما دیگه راهی نداشتیم، چاره‌ای نداشتیم جز اینکه موضوع برنامه رو بذاریم انتخابات. بالاخره ما میلیارد میلیارد پول می‌گیریم از آقای رفسنجانی و این ور ور جاسوسی کنیم تا تو اینجور فرصت ها آقا نفوذ کنیم تو انتخابات، دخالت نموده نتایج اون رو به نفع خودمون و استقبال جهانی عوض کنیم، دیگه از این وظیفه شغلمونه. این وسط حالا چند تا قتل و جنایت و تجاوز و سرقت مسلحانه و اینام انجام تا مساق تشویش از عمومی بشیم و تقلب انتخاباتی میکنیم تازه اگه لازم شد به چند تا سفارتخونه هم حمله میکنیم کلن هر چیزی دیگه ای هم که داریم رو میکنیم کلن آقا این هفته از خون جلو ششامونو گرفته میخواییم بتر کنیم شما هم با ما باشید برکی یه ما کنترل کنید ما غیر قابل کنترولیم این هفته برو بریم شهرها بذین، ن تاریخش کنین، انتخابات رو بندادین عقب، ای. یه اون دو ماه بندادین عقب، ن رای بدین، ن تاریخش کنین. چرا آخه؟ آخه چ... قبل از چه کار داری؟ نمی‌رسی رای بدی، چیه دوستون؟ چرا بندازن یکی دو ماه عقب آخه؟ ما حال صحبت می‌کنیم ولی بعید میدونم قبول کنن. وا بعید می‌دونم. یِس او یِس آقایون دختر خانم‌ها آقا پسر هفته پیش شبکه یک از آقای حسامدین آشنا که مشاور آقای روحانی هستن و آقای صفار هرندی به نمایندگی از دلواپسان دعوت کرده بود که برای بررسی پدیده نفوذ توی میزگرد تلویزیونی شرکت کنند این نفوذ هم خب میدونید دیگه اسم اسم رمز اسم رمز جدیدیه که معظم له برای چاپه کردن منتقدین انتخاب کرده یعنی تا قبل از این خب فتنه بود الان که دیگه فتنه دیگه کم کم داره تاریخ مصرفش میگذره نفوذ جاشو گرفته چند وقت دیگه حالا همینم هم باز عوض میشه میشه یه چیز دیگه مثلا چه میدونم میشه فساد اناد حالا کاری نداری این آقای آشنا همون اول برنامه زدن زیر همه چیز و موضوع برنامه و صحبتاشونو اینجوری شروع کرد واقعیت کشور ما امروز تقابل میان نفوز و ضد نفوز نیست حتی من میخوام تأکید بکنم تقابل میان افراد و اعتدالم نیست واقعیت اینه که شما در چپ باشید راست باشید اعتدال باشید هر چی باشید واقعیت اینه که کشور روز به روز داره خشکتر میشه واقعیت اینه که ریزگردها از قرمشه رو اهواز شروع شد به تهران رسیده تا شمالم هم خواهد رفت واقعیت این استش که فساد در کشور نگران کننده است بله حرف ایشون خوب این بود که کشوری که با این همه مشکل و آلودگی خوشکساالی و, و فقر و ها دست به گریبانه چرا باید دستی دستی خودش بر خودش مشکل جدید به به تراشه و بعد توجه توجه و تمرکز همه رو و همه انرژی خودش رو صرف حل کردن اون مشکل جدید بکنه خلاصه توی برنامه زنده ایشون زدن زیره رفتر دستک معزمله که بابا جمعش کن آخرین بساطات نفوز رو دیگه به خودم اون قدم دیگه توفه نیستیم حال کل دنیا حستون نفوز به ما رو داشته باشن حتی ایشون خب به این صراحتی این نرفها رو نزدم مقداره در لفاف فرمودن ولی خب همین تو لفافش هم خودش حرکرکتی بود در نوع خودش. و اما همونجور که گفتیم میخوایم بریم سراغ انتخابات و یه مقدار خط و خطوط بدیم به مردم که یه جوری بلکه بتونیم مهره های استکباری خودمونو به فستیم برن تو مجلس بله دی کاری که دستمون برمیاد دیگه دیگه یه وظیفه که به احدامون گذاشتن جیرخار امریکایی هر حال به خصوص آقا مجلس خبرگان خیلی مهمتره منی ما چیمون از این رسانه انگلیسی کمتره؟ رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران مردم تهران دستور العمل میده به فلانی رأی بدید به فلانی رأی ندید بله حالا ایشالله آقا تو سوهرانی بعدیش حالا یه یادیم از رو پس پاسوردو بکنه. می بریم سراغ شورای نگهبان و کمی در مورد جایگاه و نقش این شورا توی انتخابات صحبت کنیم. پس همین اول کار یک سلامانه و علیکم و رحمت الله و برکاته. مخصوص شورای نگهبان پسند خیلی اینجوری عرض می کنیم خدمت همه عزیزان که در شورای نگهبان وظیفه سنگین رد ها رو به عهده دارن و با این حجم از رد صلاحیت میتونن برن و رکورد رد صلاحیتو توی گینس به اسم خودشون ثبت کنن واقعا خدا قبط خسته نباشین همگی خیلی وقتا تو دلم آشوبه، خیلی وقته من همه عشقم گینم توی این شبا هوا سنگینه تا خود صبح خواب بد میبینم چرخ زندگی به کام ما نگشت هر دومون هم زده ما ما همو ما یه ما تامیل ما جوانیه همه سوزندیم یه عمریه بده کار غمیل من از این سر تو از اون سر زمان خاطرات کنه رو برق زدیم هفته ها پشت سر همو اومدن ولی قدم به سمت هم نیومدیم دوستان به طور کلی ما عاشق اونایی هستیم که عقیده میگن بدون اینکه به مخالفینشون فش بدن امروز میخواییم بریم سراغ شورای نگهبان و انتخابات 94 چهار تو که دستت به رد سلاحیت آشناس قیامی گگه شماره 982 بدانید و آگاه باشید اگر یک زمان امام سابق فرموده بودند که میزان رأی ملت است این مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر میزان رأی شورای نگهبان است و این نهاد قبل از مردم تشخیص میدهد که چه کسانی و از کدام جناح حق رقابت در انتخابات را دارند پس چنانچه هنوز پی به معنا و مفهوم میزان نبرده اید همان از جمهوری اسلامی را نشناسندگانید امزاو جمعی از خیلی خوب مفهوم میزان براشون جا افتاده ها و با وجود شورای نگهبان اصلا احساس خود میزان پنداری نداشته های رادیو پس دادا دادا, دادا, دادا. جونو بیا بیا بیا آها همینه همینه به آقا سال تموم شده اول اسفنده اه, اه, اه, اه نگاه کن تور خدا چقدر زود تموم شد همه چی گذشت ای بابا رادیو پس فردان داره تموم میشه آخ آخ آخ آخ 986 ایم الان 986 تا برنام. Hey, baba. Hey, baba. ای بابا ای بابا هیچ همین فقط همین رو بودم خونه مقام موعد دیدم و داره خون میکنه <تصفيق> گفتم آقا جون مگه چه شده گفت مگه نمیبینی مردم تهران عزم کردن که بیان پای صدقای را اونم میلیونی میخوان بیان گفتم آقا این که خوبه که مردم بیان پای صندوق دیدم آقا نارانت جو بود گفت نمیدونی این مردمی که دارن میان میخوان به احمد جنتی من رعی ندارن اگه احمد جنتی من رعی نیاره من آواره میشم خیلی ممنونم بله دیگه واقعا امثال های جنتی و مسبان نباشن توی خبرگان اصلا دیگه خبرگان لطفو و صفایی نداره که ولی خب جنتی یه چیزی دیگه است بله خیلی ممنونم به خاطر این روزه انتخاباتی تو لطف کرد انتخابات توی جمهوری اسلامی با همه جای دنیا اینه که تو ایران بیشتر این حیجان و استرس انتخابات مربوط به قبل از رعی دادن و رعی شماری و نمیدونم اعلام نتای جوی یعنی اصولا قبل از این که مردم بخوان برند پای صندوق و به کسی رعی بدن شرای نگهبان خودش یه انتخابات همچی سفت خیلی سخت برگزار میکنه ها تو سینه حبس میشه و در نهایت نتایج انتخابات شورای نگهبان که اعلام میشه مشخص میشه که کدوم گروه و کدوم جناح برنده انتخابات هست این سیستم منحصر به فرد و استثنایی خاص کشورهایی مثل ایرانه برحال حکومت که نمیتونه که همیجور افسار خودشون بده دست مردم هر طرفی خواستن با خودشون ببرن که مملکت ولی فقیه داره شورای نگهبان داره امام جمعه داره الکی نیست که اینه که همونجوری که گفتیم از زمان ثبت نام کاندیداها تا موقعی که نتیجه انتخابات شورای نگهبان اعلام میشه ها تو سینه واقعا حبس میشه بعد از اعلام نتایج اون انتخابات که به انتخابات اکبر معروفه وارد مرحله انتخابات اصغر میشیم بقیه ها دیگه بقیارشو که مردم تصمیم میگیرن که حالا از بین اینایی که شورای نگهبان با دقت و وسواس برای ما دستچین کرده ما به چه کسایی رأی بدیم البته بعدش هم به این سادگی ها نیستا اونم میگم خدمتتون مونده مونده ماشین مشتیم زنوبی معتلی باشین مشتی ممدلی دلی بغداره نه سندلی باشین کارتون مارتولا که انداخته صندوق سیاه هستن اینو البته فضوله نباشه ما از اوناش نیسته زونه قبلیگو او برای انتخابات اینو باره ما کل شهر رو چی؟ دوباره برداشته این اکسفنگتای این اتیقه ماتیکا یعنی <تصفيق> yani, شما چیزی خودت کاندید ماندیدی؟ نه؟ چی <تصفيق> اون آن مدیرش تابخونهی سفارش مفارشان رو با تحویل دید ای میگم این انتخابات و انتخابات ها به زرر هر کی باشه به سود شما نه کار کاساوی سکه و ایوال باش میگم شما تو کار تبلیغ مبلیغی به این کاندیدها بگو آخو با این فیگورهای مسخره چی میگیرن واسه این اکساشون آخو؟ یارو چی تو محله ما تبلیغ کرده بود صحبی داشتم میامدم چی فیگور گرفته بود نشون داده بود اینهون آرنولد. یکی نیسته علاش شما میخوای بریم مجلس. میخوای بریم مجلس میخوای پشتبازونشون رو ملت بدید زام زمانی بدنسازی که نمیخوای برید والا. میخندی؟ باید بهش بگی میخنده یا سر خطبت ها و همکان ها تو گوشیشون شونید اکسه رو داشتن ببین به مولا به مولا داشتی داشت با تادوره غیر میداد یعنی چی آخه اینوان نه باز میخنده بابا مجلس میخوان برن دیگه باز خونه نیست چه تو خارج مارزش هم این نیست دیگه بلا زونم؟ بله البته بسه رای رفتنه دیگه اینا میان مره رایتی هر کاری میکنن بعد که رعی تی چی ازی ازی مکه داش میگم شما که خونه داری چرا یه وانت, وانت ردیف نمیکنی خب سخته این زوری که آ داری خراب شده زونه با کارتون مارتونا ها رو بتوندیم خولم بیام کابوت بزنم بلا چی سسوت راش مندازم فنیمنی ردیف آ. راننده بیامون گو که یکه بینالا زون من تا رفلک و پولشو میگیریم و دیگه شما هم که تی الان مایه پوی ردیفه زون ایو روشه زونت بابا کار میکنی زحمت میکشیم ده دیگه رو کرتن اونایی که مفت بخورن میترخرم ایشالله چی از سششون مزنه بیرون سه ترافیکی هم اصلا هم بابا بندازیم از این کوسه پس کوتها بریم چه دیر شد بابا خیلی عاشق شدم بیخبر یه دل دارم دو دل بر این یکی از اون بهتر کار دل پرنگ دار اولی قلب مهربون داره دوگومی صرفت کنون داره این یکی مهرب وفا سوکارشه اون یکی یه بار کنک سوارشه دلم میخواد سوار کنم بگو خود ما جواب کنم اولی دومی یهار می خوام کبون باشه خوش قلبام ای روبول باشه دوکارش باشی درسش خوب ربول باشه با که دیگه خاصلی شده نمیدونم چی کار کنم نمیدونم خیل میوند که بونه ای سوارکن اما بعد از اینکه شورای نگهبان همچی گازبوری و قهرمانانه این دوره اصلاح طلبا رو از دم تی گذرون دو تا راه جوله پای اصللا طلبو بود یا تحریم کنن انتخاباتو که خب در اون صورت برای حکومت مستاق همون زربل مسئله می شدن که خوش به حال باقبونی که شغال از باقش غر کنه و قطعا کسانی که رد سلایت کرده بودن و همون خوشحالتر هم می شدند یا اینکه به هر ذرب و وزوری هم که شده حتی شد از بین خود اصولگرایهایی که کمتر تند رو هستن لیست دادن و موی دماغ معظمله بشن که خب اصلاح طلب‌ها رو دوم انتخاب کردند که این مساله بحثای خیلی زیادی پیش آورد که اصولا جنبش اصلاحات تا کجا قراره عقب نشینی کنه و به جای اینکه اصلاح طلب‌ها حکومت رو اصلاح کنن حکومت اصلاح طلب‌ها رو اصلاح کرده و نمیدونم از اصلاح طلبی رسوندتشون به اعتدال و الان هم از اعتدال رسوندتشون به اصولگرایی و چهرهایی مثل علی متहरी و ری شهری شدن چهرهای شاخص لیستای اصلاح طلبا. بعضی بعضیا معتقدن که جنبش اصلاح طلبی با همین فرمون بره جلو چند سال دیگه حاج شریعت مداری هم تو لیست اصلاحات جا میشه و در اصل اصلاحات دیگه برمیگرده به آغوش اصولگرایی و ولایت فقیه و دیگه به کل سر به راه و عاقبت به خیر میشه بله این روزا شا بحث اینه که به ککیرای بدیم به کی ری ندیم اصلی با چا های قدیمی دانشگاه رفته بودیم یه چای خونه سنتی. فکر می کردم اینا دیگه حرف ری و اینا رو نزنن توون چه پنج سالی هست هر وقت دور هم جمع شدیم یا از خواننده های مجلس حرف زدن یا از فیلم فلان بازیگر یا زندگی بهمون ورزشكار خلاصه من با خیال راحت داشتم چای می نوشیدم که دیدم سارا گفت می دی؟ گفتم چطور؟ گفت منوهانی و مهدی با هم لیست نوشتیم که به کیرای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 و این شوی خود را با موضوع درباره انتخابات هرچه میدانید بنویسید و غوظ می نمویم مدر عزیز ما معتقد است چیزی که از صندوق رای در می آگد آن چیزی نیست که ایشان در درون آن انداخته است و به همین دلیل ایشان هنوز مطمئن نیست که رای میدهد یا نه وقتی ما با حالتی معصومانه از ایشان پرسیدیم که ای مدر گرامی وقتی شما در درون صندوق رایت رو را می اندازی و وقتی در به را باز می هم از آن رای شما و دیگران بیرون می اوید دیگر که ایشون در این لحظه سریع به تحصیف تکن داده از داشتن فرزندی به خنگی و سادگی ما حسابی حسرت خورده و از این که با پدر ما وصلت کرده که نتیجهش بچه با این فهم سیاسی و انتخاباتی پایین میباشد ابروز ابراز پشیمانی نبود و بدین وسیله کل دانش ما را که در کتاب علوم خوانده بودیم ری از بین نمی ولی وقتی به داخل صندوق رفت از آن بیرون میخولیت را زیر سوال برده ما را در ناامیدی محصوممان فرو برد. پدرمان در حالی که داشت به یک برنامه یک دفشاگرانی مغوارده نگاه می کرد و هی حرت میخورد. در پاسخ صبل ما عین توپ به که محکم آن را بشوتی از جا پریده چیزی نمانده بود روی ما فرود بیاید و پس از اینکه به اول و وسط و آخر و چپ و راست و والا و پایین و دیگه همه مسئولین فشاره رکیف داد اوق اجازه اعلام کرد دیگه نمیتونه این صحنه اورووی خطرنا که انتخاباتی را تحمل کنه و برای همین به نشانه اعتراض درست در روز انتخابات ایران را به مقصد پتاایو ترک کرده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 ما از ستا انتخاباتی خواهش می‌کنیم برای گرم کردن فضای انتخابات به خوهر خودشان پیشنهاد همچی کاری بکنن که در نهایت از صندوق یک چیزی در بیاید که دیگر مادر ما معلومات کتاب علوم ما زیر سوال نبرد مرسی اح. نقطه آقای جازه اما اما اون کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد میشن آقای اون خانمها دختر خانمها آقا پسرها به این معنی نیست که چون مرحله اول شورای نگهبان تاییدشون کرده ای تو مرحله دوم مورای بدیم طرف میتونه مثلا بره مجلس شورای جمهور بشه یا هر هرچی تو مرحله شمارش آرام بالاخره مکانیزم هایی برای نظارت و ساماندهی آرا مردم وجود داره که دیگه سیستم انتخابات از اون حالت هر دنبیل بیل و هر کی بیشتر رأی آورد بره مجلس و اینا خارج بشه دیگه یعنی اگه قرار باشه چهره های شاخص نظام یا اونایی که نظر رهبری بهشون نزدیکتر رای نیارن جاشون مثلا دو نفر دیگه که حالا شورای نگهبان لطف کرده و تایید صلاحیتشون کرده بیاین بریم جلد که نمیشه که اینجا هم عزیزانی هستند که احساس تکلیف کرده و وارد عمل میشن و با تخصص و تجربه ای که در زمینه اعداد و ارقام دارن کاری میکنن که بلکاره قبچهروای شاخص نظام پشت در نمونن بیچه برند برن داخل نمونشم خواهم این چند دوره پیش انتخابات مجلس که آقای حداد آدل توی تهران رعی نیاورد و بعد از اینکه حالا چهار بار صندوقا رو هی بازشماری کردن و 700 هزار تا رعی و باطل الام کردن بالاخره ایشون شکر خدا به زور رعی آورد تونست بره مجلس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 بلکه حتی اونهایی که بفاتیر سال ۸۸ و در زندان هستن اونها هم مداره پس این بار هم با شعارهایی چون از حسر درآوردن آوردن محصورین، آزاد کردن زندانیان سیاسی، راهیافتن زنان به ورزشگاه، دستگیری اسید پاشه فراری فرابی اسفهان، کاهش تورم، افزایش فرصتابی شغلی و کاهش تصدیگری سپاه در کل ارکام کشور. میتوانیم شما را به مجلس برسانیم اگر شعارهای خود را به شعار بازن بسپاریم. ها آقا شما اصلا در حدی نبودی که رای بیاری چی شد اومدی مجلس که ها والله این بازان یه کاری کرد من خودم هم نفهمیدم چی شد مردم همینجوری بهم رای دادن خیلی خوبه شوهربازان اصلاً من برای میاندوره ای بگم داداشم بیاد با شوهربازان کار کنه ما خانوادگی دوست داریم نماینده بشه آه بله بگو بیاد پسرم به بزرگ منم میاد بله شعار بازان هیچ وقت برای رعی آوردن دیر نیست شعار بازان ای با سلام بیست و, و سی را زمنه ابرابز و تحصف از تعطیل شدن مدارس نه شهر استان خوزستان به دلیل آوردوگی هوا با مروری بر اناوین مهمترین خبرهابی امروز و امشب آغاز می به ابراز نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم ورود دادگاه بابک زنجانی به پرونده دوازده مدیر احمدی نجا که به پرونده وی مرتبط بودند و نظر کاشناسان که با خوب همینجوری بخوام ورود کنن که آخرش میرسه به خودشون فیلتر و رفع فیلتر ورژن تحت وب پیام رسامن تلگرام در عرض چند ساعت امروز و نظر فعالان عرضه فیلتر که وقت فکر نکنید این کارا به قاطر انتخابات لنگر کشی بود گیر کرده بود به تلگرام و انتخاب رسمی ستاد انتخابات از صدا و سیما به دلیل پخش اطلاعیه های جعلی و سوال کارشناسان که با مگه صدا و سیما چیز غیر جعلی پخش میکنه که حالا چ مهم سر خط های خبری ساوت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکارم بلی بلی با سلام هیدر مسلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدینه راد نفوذ کنسرتی را یکی از روش های خطرناک نفوذی دانست و گفت پول و روزبی جنسی دو موضوع اصلی در این نوع نفوذ هستند. به عنوان مثال برگزاری کنسرت در شهرهای کوچک به این معناست که متأسفانه دشمن در این شهرها نفوذ داشته است. پس از این سخنان بود که ادهی از فعالان موسیقی در اقدام هماهنگی هنگی شدند که برای آقای مصلحی و باقی روحانیونی که در مورد کنسرت ها اینطور فکر میکنند دوره برگزار شود که در آنها به این عزیزان بیاموزند که کنسرت یعنی برگزاری و اجرای موسیقی که در آن تعدادی تماشاچی نوازندگی و خانندگی هنرمندان یک گروه موسیقی را شاهده می کنند و برایشان کف زده از سالون خارج می شوند بنابراین کنسرت با فیلم های پورن و عمال جینسی و خاک برسری مورد نظر ایشان کاملا متفاوت است و با برگزاری آن در شهرهای کوچک مطمئناً اتفاق خاص و آنچنانی نخواهد افتاد پایان محروف اخواد ای بله همانطور که در خبرهای روزهای گذشته شنیدیم دالتون ها یا همون سبرابدر معروف جیبور و کفزن پای تخت برای هجدهمین بار در حین جیبوری دستگی شدن در همین رابطه مساحبهی داریم با جناب آقای جناب سرهنگ کاشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی دالتونیاتی برنامه بله. داماره و در جریان جزیات بیشتری از این پرونده قرار بده. بله. جام سرنگ بفرمایید. بله, بله منم سلام عرض میکنم. و ای پیروزی بزرگا بله. به ملتی شریف ایران و همکارانم هم در نیروی انتظامی تبریک و تہنیات ارسال میکنم. سرنگ 22 بهمن تموم شده پیروزی بزرگ چیه دیگه؟ ب... نه خیر همین دستگیر شدن این برادران دالتانا میگم ها ها خسرا باشی. می بگم همکارا سرود ورزشکاران دلاوران اینا بذارم برایت. نه نه خیر آقا نیازی نیست ما وظیفمون رو انجام دادیم هر چی خسته نباشید واقعا سلنگ یکم برای... حالا از اینا برامون بگوی دیگه کی هستن چی کارن چند سالشونه چی جوری بله ببینید اینا خب... سه تا برادرن که خب... بزرگترینشون جفر است وسطی احمدا کوچیک هم جواده یعنی اینا واقعا با هم برادر هستنگ بله متاسفانه برادرن جا... ولی خب ما این سری اول تونستیم خب... خب... جفر یعنی برادر بازارگرا بگیری ایشون 17 بار قبلا دست گیر شد الان هم داشت زندانشا میکشید که بهش مرخصی دادن و متاسفانه مراجعت نکردن با برادرهاش دوباره شروع به شرارت کردن اوه, اوه یعنی همین الان این حکم قبلیش هم تموم نشدی؟ نه خیریشون همین الانش هم زیر حکمه بله. این جفر چند سالش هست سرنگ این... فکر کنم پیر باشه دیگه نه؟ نه خیر ایشون فقط بیس و هفت سالشه جان؟ بیست و هفت سال بله اینجوری بله باشه بله. که این از زایشگاه آوریدن دم بله. زندان تحویل دادن رفتن چه بابا بعد بله دیگه متاسفانه ایشو خیلی سابقه دارن و بله. دران یعنی بله. زنداناتون هم عالیه نا خیلی سمر بخشن بله. شبون میمخت تحویل میگیرن اسقر رس... گافگوش تحویل بده <تصفح> اولا زندانا مال سیستمه قضایی بله. ام بعدم این که ما که نمیتونیم توانی ادمو راه عوض کنیم که عزیزم من... آ طرف میره زندان بعد به مرخصی میگیره میاد پروژه های خلاف نامون بله. موندهشو انجام میده برمیگرده این شو کار اخر های نه میبینید قانونه آقا کاریش نمیشد کرد این بله قانون دیگه بله. سن یعنی من فکر کنم این جعفر هنوز پاش نرسیده به زندان رفیقا رو جمع میکنه سی سلولش میگه اول اهنگمو بذارید که آهنگ چی چی اهنگ چی چی است آقا جون چیزی... نمیشه آهن... از این کارا کار کرد. چی, چی میگوی شما الان ما هم کارام میخوام اون اهنگ رو بذارن تا متوجبیش ی آهنگ چی آهنگ همکار هم... گرامی و آهنگ این آقا آه. جعفر رو بله میان، آه، یعنی چ چوا ی عزیز برنامه پلیس است جدی هستی نه این گجل چی شما میذاری تو زشته تو واقعا برای رسانه من متاسفم رنگ بیه رد چی ها من میدم حالا جعفر هم دوباره داره وسایلش جمع می‌کنی گود بای پارتی می‌گید می‌دیرون برو فشار کوله توجه شما شو دیگر رنگی دیگر و جعفری دیگر خداو بخدم تو اینو فکر کو دوماش روان غیر متوقع کو زشته سیم <تصفيق> بیا با هلش بیا. بیا بیا بیا بیا با, بیا با هم چی یه دقصه اصلاهی بکنی بیا ها بیا بفا ها یفتی سنایی پا سیناله بیلتون هلا تو موها خیلی خفا خیلی حسن خود بچه چی شد در از اون در یه خانوم من یو ها از زفر خوششون من بعد کمومت تلو داد زرگفت بوشت در بابا بو هلسه بابا بو اعبته دوستولویو داشتولم بیبری نه. سه تیپ دیگه کوت. جگوت باید تیه دافره. جگوت باید تیه دافره. جگوت باید تیه دافره. جگوت باید تیه دافره. جگوت باید تیه دافره. جگوت همه شماره. از و ما هستش دو صف چهارصد و بیست، بیست و دو 420, 26, 21, و دو برای تلگرام ما هم میتونین لطف کنین عکس و ویدیو و صدایی که میخواین بفرستین رو به @sign پسوردگرام بفرستید. خیلی هم ممنونیم ازتون ما همه رو چک میکنیم دستتون درد نکنه. تو به من تو خوب احساسم همه میدونن من روی تو غیرت دارم و حساسم قلق دل تو دستمه و میفهمم اون چشاتو گل از گلم میشگفه وقتی میشندم صدا تو نفسم تو میشه و صدای قلبم میشه زیاد وقتی از دور داری یا یا که صدای پات میاد زبونم قفل میشه حتی نمیتونم صداد کنم دوست دارم تا آخره امدم فقط نگات کنم بیا با عشق من شو اگه دشی می میرم برات بیا به عشق من شو اگه دشی دل میشه فدات بیا به عشق من شو اگه دشی می میرم برات بیا به عشق من شو اگه دشی دل میشه فدات مخالفین شرکت در انتخابات و طرفداران تحریم انتخابات معتقدند کسایی که تو انتخابات شرکت میکنن به جمهوری اسلامی مشروعیت میدن و یه جورایی آب به آسیاب به جمهوری اسلامی میروزند. مخالفین شرکت در انتخابات و طرفداری تحریم انتخابات نظرشونینه اما طرفدارای شرکت در انتخابات معتقدند که آسیا به جمهوری اسلامی اصلا آبی, آبی نیست و اصلا کار چرخوندنش رو اصلا از نظر مشرویت صدا و سیما و های حکومتی انجام میدن و از نظر فیزیکی هم چرخش اصلا با این چیزا نمیچرخه با دلارای نفتی میچرخه نشون به اون نشون که همین چند وقت پیش که به خاطر تحریم ها و مسائل هسته‌ای آسیا به جمهوری اسلامی دوچار نقص فنی شده بود و دلارای نفتی خب گیر کرده بود و نمیرسید و اینا های جمهوری اسلامی وارد عمل شدن مشکل رو رفع کردن پس اینکه ما فکر کنیم ای کسی رفع داد یعنی به نظام مشروعیت داده و آبی آسیا به ریخته و باعث بقا و دوامه عمر اون شده و خب اشتباهه یعنی چه هزار نفر برن پای صندوق رأی بدن چه 20 میلیون نفر در نهایت چیزی که تو خبرها میاد صف‌های طویل شرکت کننده هاست و میزان مشارکت رو هم که هر چقدر بخوان میتونن اعلام کنن اینجوری نیست که مثلا مردم امروز نرن رأی بدن فردا رادیو اینجوری بگه شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید به علت عدم مشارکت مردم در انتخابات روز گذشته جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری مشروعیت خود را از دست دادند کی گفت این جوریه مثلا رادیو روشنکنی فرداش این ری رای بدی این جوری میشه رهبر هم مثلا از شدت غم و قصه تو آی سی بستری بشه نیست این جوری اینا استدلال های اونایی که موافق شرکت در انتخاباتن اینایی که گفتم تا اینجوری داشته بشید حالا از اونور قضیه هم نگاه زای ما خیلی خراب رایه میاری اینطوری. یه زنگ به این حاجی نماینده زاده بزنیم اون تجربه بیشتره چند دوره رفته تو مجلس. کجا بودین شمارش آه آ یاش، یاش. نماینده زاده اگر بتونی کمکی به ما بکنه بله بفرمه علو بله بله من موبایل آجاقا نماینده زاده رو گرفتم بله من موشی انتخاباتی انتخاباتیشونم همه خطاشون دست به منه بله, بله من آجاقا عارض هستم از حوض انتخاباتی بقلی بله. وست کنید با آجاقا لطفه بله, بله. آجاقا آیه کشی من بله. درمانشون رو بدم به هیچون بدیم بینید بچه موشی هم گرفتی خواهی زمان نداشتم بیشتر. با شما چرا اندکو سریت کیشیدی جلو؟ راحت باش از این من بهت مانگو شیرو. حالو؟ حالو؟ نفرماید هجعا. خوبید؟ باه باه باه باس. حالا من علایقم شما چطوری؟ خوبید؟ خوبی؟ خوبم. شما خوبید؟ انشالله. حالی هجعا راستش خیلی تو حوزه ما آزار خوب پیش نمیره. حتی دیشب شام هم دادیم به مردم بنده دوره قبل چند بار نهار دادم خیلی بهتر جواب داد ای چطور مگه آخه مردم شب شام مفصل میخورن سنگین میشن ام. بعد از شما کینه به دل میگیرن رأی نمی بدن چقدر نکته مهمی پس بزوم الان به این رمزون بگم عوض کنه منوی غذا رو آخه آبگوش سفارش داده بودید رمزون کیه دیگه حاجی بابا رمزون مدیر ستاد انتخاباتی دیگه داماد برادرمه برادر من دیگه نصیحتی به شما بکنم من دو ف... شما بیشتر پاره کردم به فرمایی تاجی استفاده میکنیم دیگه برای همین تماس که این رمزون اسمش رو عوض بکنه ای خود برای چی اسمش رمزونه دیگه آج آقا مگه شما رای نسل جوان رو نمیخوای آمام اگه بل حتما میخوام چرا به میکن. رو اسمش رو این چند روز بکنه رمزی تمومه دیگه جبونا ها از این اسم خوششون میاد زنی میدن احسن تاج آقا چه نکات مهمی ما همین الان زنگ میزنم این نکاتو گوش زد میکنم خیلی لط کردی بسیار خوب بسیار خوب بنده برم قرار دستشویی باشگاه ورزشی و حوضی خوابیم افتتاح کنم دیرم میشه خدا قربان آقا. مرحمت زیاد حاجی استفاده کردیم واقعا خدا نگهدار دار خدا خوبین رمزون رو بگیرم این دیگه. حالا ببینیم که حاج حاجاقا درست میگه این الو الو رمزی رمزون چی تو از امروز تا آخر انتخابات اسمت رمزیه فهمیدی رمزون مرد چی جواب زند با من ببین گوش کن رم... رمزون رمزی گوش کن جواب زنت با من. ببین ساکت چه ببین چی میگم سری میری هلال پذیرایی؟ میگی بهشون یا غذا رو عوض کنن یا نمیشه نخود های آبگوشته رو کم کنن همین که میگم ب... ب... با من بحث نکن رمزی رمزون هرچی که هستی رمزی تو یه م... راهان یه منشی بعد هجاب رو عقبم پیدا کن رمزی ها لازم میشه تو این چند روز ودا برای تو نه برای من بچه پر رو بودو ببینم دو افراز خدا خداحافظ <تصفيق> آقای روحانی توی یک همایش کارگری ضمن صحبت های زیبایی که در مورد خودکفایی و تولید و جایگاه والای کارگران داشتن کلبت هالا اگه همه هم بذارن روی هم قبض آب هم نمیشه باش برداخت کرد رفتن سر اصل مطلب و یه گریزی هم به انتخابات زدن اینجوری من از همه درخواست میکنم روز هفته اسفند روز نشات باشه مخصوصا در تهران تهران مردم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 برشی جان سلام می میکنم پسرم نزدیک انتخابات من هم دستم بنده حال مرتب جلسه و حمایش و اینور و اونور پسرم من باید فکر آینده رادیو و نفوز رو هم بکنم جلال چند باری به من سمس داد نگو بهت گفتم میگه پولیسش همه رو پاکت جدا به راش بفرستم عجب بود من وسایل کردم سری جدید برنامه های نفوذیمون رو کدوم یکی از شماها رو بعد انتخاب بکنم با. یه کمکی هم فکری به من بکن زنگ بزن هارد دارم بعد من سامی جان شرام جان من گفتم این نایرفسان جان زنگ میزنم شما پخش نکن چش چش من تماس میگیرم دیگه چش بعد برنامه من ان تماس میگم جلال آقا این چه کار یعنی پول سجمبا رو تکواندو برنامه گفتی جدا بد بده واقعا آقا این روزای آخر شده مثل روزای آخر زمان شاه کلا رادیو رو هواز همه فقط به فکر منافع خودشون میخوام بچاپن ماشالله ماشاءالله <تصفيق> اما چند وقت پیش توی خبرها داشتیم که 27 هزار پلیس افتخاری همکاریشون رو با نیروی انتظامی شروع کردن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 یه حرفا دیگه اصلا صورت خوشی نداشت که گفتم آنتن یارو و یه جور فوش مبسوط می‌شدین دیگه ها الان دیگه زاره یه دست رنگ روش زدن از یه گوشه پلیس افتخاری و یه انگیزه شرعی و بچه‌ ملی و اینا هم همه چسبودن بهش دیگه کمتر باز خجالت و آبرویی بشه آقا خبربری خبرکشی آنتن بازی از محیط کار محل زندگی و نمی‌دونم گرفتن پاداش در ازای اون با صد تا تغییر اسم اون زشتی و کراهتش کم نمیشه ها این جنونا خوردن نداره ها حالا میخواادسمش آدم فروشی باشه پلیس افتخاری از ما گفتن بود خلاصه.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 همین انسان ها در پایان شب به جوک‌های قومیتی موجود در کانال‌های تلگرام بخند و بمیر، بخند و بترک، خنده کن خنده قشنگه و جوک بگم حال کنی، هار هار خندیده فردا صبح اول وقت آنها را با باقی رفقا مرور خواهند کرد.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 بله مرشد از تماستون نظرشون رو گفتندی کلن فریال ها همه خوبن، فریال بد نداریم اصلا. م تنها کار مثبت که تو اون انجام دادم این بود که هیچ فرنگ ندادم چون میدونستم که رفتن پای صندق برابر با اینه که رگی ما دارم تایید بکن ویدبیداری همه مردم گیرم بله خیلی ممنونم از شما این مثبت ترین کاری که کرد این بوده که کاری نکردین دیگه خ نبش مرسی از تماس اما توی این دور اصولگراها که دیگه به لطف شورای نگهبان خیالشون از بابت داشتن اکثریت توی مجلس شورا و خوبرگان راحته الان دیگه سر چیدن مهرهاشون دارن برنامه‌ریزی میکنن و لیست میدن یعنی شورای نگهبان اگه 100 تا کارت داده باشه دستشون الان اصولگراها دارن میچرخن از بین این 100 تا کارتی که دارن با 3 تا از اون آسا بازی کنن اصلا طلبو هم که خب کارتی دستشون نیست میخوان حالا که توی بازی نیستن و کارتی بهشون داده نشده تا جایی که میشه بازی اصولگراها رو به بزنن. یعنی اگه اونا جننتیشون رو میخوان بفرستن توی بازی اینا یه کاری کنن که جای جنتی مثلا ری شهریشون بره تو زمین و جنتی بچینه رو نیم کرد. یعنی به همین قدرم راضین دیگه الان اصلاح جالب اینه که حالا سر همین یه ذره‌ای هم که به اصلاح طلب و آزادی عمل داده شده رهبر و وزشاخ‌های رهبری اصلا اعصابشون ریخته به هم و میگن در همین حدم هم اصلاح طلب‌ها رو نتیجه انتخابات تاثیر بذردن این پوته‌ی انگلیسه. او کلا بزنن به تخته که یه دست ده... کلاً نمیدونم فقط اصولگرات تایید صلاحیت کردین دیگه بعد اصلاح طلبها از همین تایید صلاحیت شده های اصولگرا یعنی حق ندارن لیست بدن مردم رو دعوت به رأی دادن بکنن و هر ترکیبی بجز ترکیب مدنظر آقا انگلیسیه اون چه مرضیه دیگه انتخابات برگزار نکن های نظام بفرست برن مجلس دیگه اسمش هم چه مجلسه چی او های نظام مجبورین مگه شدم تیم توی ماجرای رد صلاحیت حسن خمینی و اصلا روند تایید صلاحیت خبرگان توی این دوره شورای نگهبان حاج آقا جنتی رکورد عجیبی رو خلق کردن حتما میدونید که شورای نگهبان از دوازده نفر تشکیل شده که از این دوازده نفر شیشتاشون تاشون های منصوب معظم هستند، هستن تاشون هم حقوق که برای مجلس میان عضو این شورا میشن تو روند تایید یا رد صلاحیت اصولا این 6 تا حقوقدان کلا نقشی ندارن به حالت هوتوتو در میان اما جالب براساس آمار رسیده این دوره از اون 6 تا فقیه هم ظاهرا دو تصمیم گیرنده بودن در این مورد و بقیه فوقه ها کنار گذاشته شدن یعنی در نهایت از کسایی که تصمیم گرفتن در مورد تایید یا عدم تایید سلایت یکیشون میشه هاجاغا جنتی که خوبیشون اصلا سابقونن اونجا یکی دیگرشون بر اساس قراین و شباید هاجاغا یزدی هن که خوبیشون هم از یکی به زنای درگاه رهبری هن و خلاصه توی یه همچین روندی بود که بیش از 80 درصد همین شورای نگهبان سر تاپا وابسته به معظم هم هوتوتو شدن و خلاصه دوستان همچی دور همی دو, دو نفری تصمیم گرفتن که کی بازی باشه کی نباشه اینه که دیگه بعضی ها پیشنات دادن که با چه خب چه کاریه ماشالله آج آقا جنتی که به این جوونی به این هستن از این به بدلیست علاقه مندان بدین دستشون خودش خط خطیش کنه هرکی رو میخواد تایید کنه هرکی هم نمی‌خواد بفرسته با دیگه یعنی اولا اینجوری شده که تو خودش شورای نگهبانم یه شورای نگهبان دیگه درست شده که شورای نگهبان اولی نگهبانترم هست خیلی بام از دست به خدا خیلی والا به نظرم یا آقایون خیلی سوسولن که هی قور میزنن از رد صلاحیت شدنشون یا ما خانوما دیگه عادت کردیم به رد صلاحیت شدن زنم مرد نشن میکنم چون هست دیگه اصلا دیدین وقت اعتراضات رسانهای به رد ها اینم بگن که چرا یکی به صرف جنسیتش رد شده نه دیگه اون وقتی دوست من سمیه هنوزم فکر میکنه رد صلاحیتش کردن چون تو فلان مهمونی جوکه جنتی گفته بوده یا چون برا حجابش تذکر گرفته بوده از گشت ارشاد ایش میگن بابا اینا خوش ندارن تعداد خانما تو مجلس بیشتر از همین چند نفری که الان هستن بشه میگه مهم نیست من دیگه هیچ بهونه‌ای دستشون نمیدم تا براد دور بعد تاییدم کنن بعد اسپتروایی عمل کرد اصری دیدم عکس فیسبوکشام عوض کرده یکس با مغنعه گذاشته براش کامنت گذاشتم این بود آرمان های ما چشمک و لبخند زد دیلیتش کرد که مبادا این بشه دلیل رد صلاحیت چهار سال بعدش همچین دوستای آینده‌نگری دارم من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 با دست خلقت می وقتی عبد تشمه تو را از ازل می آفرید وقتی زمین نازه تو را در آسمان ها می چجیت من آو شدم نه نه چیزی نمی از این دیوانگی شد دنیا همان یک لحظه که چشم آن از من آو از اون دم نه آتشی یا نه گلی چیزی نمی دانم از این دیوان